دو کس را حسرت از دیر نرود و پای تقابون از گل بر نیاید. تاجر کشتی شکسته و وارث با قلندران نشسته. پیش درویشان بود خونت مبا گر نباشد درمیان مالت سبیل. یا مرو با یار از رق دهند. یا بکش بر خانمان انگشت نیر، دوستی با پیلبانان یا مکن، یا طلب کن خانهای در خرد پیر، یا مکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانهای در خرد پیل